داستان دهم ده مگه تو مملکت شما خر نیست؟ طوری که انگار دندانش درد بکند، یک دستش را به صورتش گرفته بود و در حالی که سرش را به چپ و راست وارد شد. همینطور با دست به صورتش میزد و مدام می گفت وای، آبرون رفت می آدم مبادی آدابی بود خیلی تعجب کردم از اینکه به محض ورود بیست سلام و کلامی شروع کرد به زدن خودش و گفتن وای آبرومون رفت گفتم خوش اومدین بفرماین خواهش میکنم بفرمایید بشینین آبرومون رفت پاک آبرومون رفت حالتون چطوره؟ میخوایین چطور باشم مگه واسه آدم حال میذارن دیگه پاک آبرومون رفت با خدا گفتم شاید مصیبتی سرش آمده شاید هم سر خانوادش آب شدیم رفتیم تو زمین آبرو رو واسمون نمود چرا مگه چی شده؟ دیگه میخواستیم چی بشه؟ یه خرگر به دو هزار و لیره به یارو فروختن کمی اقبتر رفتم و با دقت به صورتش نگاه کردم و خودم گفتم نکند دیوانه شده خیلی ترسیده بودم برای این که به بحانه زنم را صدا کنم گفتم یه فنجون قهوه میخورین؟ ولکن ول کن الان قهوه رو آبرومون رفت یه خر بی نعلوگر دو هزار لیره می ارزه؟ چه ارز کنم من که تا حالا خر خرید و فروش نکردم خب عزیز من من هم توی آژانس معاملات خر کار نمیکنم که اما میدونم قیمت یه خر دو هزار و لیره نیست شما اعصابتون خرابه؟ پس چی که خرابه؟ اعصاب من خراب نباشه، اعصاب کی خراب باشه؟ شما تا حالا دیدین که دو هزار و لیره بیارزه؟ فکر کنم بیست سالی هست که اصلا خر ندیدم من از شما میپرسم یه خر دو هزار و لیره میارزه یا نه؟ چی بگم والا نمیدونم آخه خب اگه خر با کمالاتی باشه شاید اونقدر بیارزه کدوم <تصفيق> کمالات حضرت آقا دارم میگم خر قرار نیست سخنرانی بکنه که یه خر معمولی تازه هم گر و هم پیر دو هزار و لیره فروختنش به یارو بدترین قسمت ماجرا هم میدونی چیه اینه که منم تو این معامله واسطه شدم نه بابا قصی از چه قراره؟ منم اومدم همینو تعریف کنم. خبر داریم که ها من و زنم از دانشگاه استانبول دعوت کرده بودن. ما هم رفتیم و یه سال دو آمریکا موندیم. میدونم. خب بهتره واسه تعریف کنم. تو آمریکا با یه پروفسور آشنا شدم، با همدیگه دوست شدیم. خیلی کمکم کرد. خیلی به کارم اومد. بعد از برگشتم ترکیه، هم واسه همدیگه نامه میدادیم. ترکا رو خیلی دوست داره. توی یکی از نامه‌هاش نوشت قرار یکی از دوستاش بیاد ترکیه. نوشتین دوستش متخصص فرش و گالیه و میخواد بیاد ترکیه تحقیقات بکنه و از نتیجه تحقیقاتش تو نوشتن کتابی درباره فرش بافی استفاده بکنه. از آن پرسیده بود میتونم به این دوستش کمک بکنم یا نه. منم توی جواب نامش نوشتم اگه دوست متخصص فرشش تو ماههایی که دانشگاه تعطیله بیاد ترکیه با کمال میل هر کمکی که از دستم بر بیاد مزایقه این متخصص فرشم چون قرار بود اول بره هندوستان و ایران و بعد از تحقیقاتش تو این کشورها بیاد ترکیه زمان اومدنش با کار من هم جور در می اومد. متخصص فرش تو ماه اوت اومد آدرس و شماره تلفن منو قبل از اومدن از پروفسور آمریکایی که دوستم بود گرفته بود. یه روز از هتل بهم زنگ زد منم پا شدم رفتم هتل مرد خیلی و رنگی به نظرم اومد از آمریکایی مهاجر بود فکر کنم یه رگ یهودی هم داشت. از جاهایی که قبلا گشته بود، چهار تا چمدون پر فرش و گلیم و گبه آورده بود. چمدونهاشو باز کرد و عتیقه‌‌هاشو نشونم داد. فرش و گلیم‌های خیلی قدیمی بودن. از چیزایی که جمع کرده بود خیلی راضی به نظر میومد. میگفت این یه گنجه که نمیشه روش قیمت گذاشت. تازه یه تیکه قالیه کهنه داشت که سه وجب ارزش بود و فوق فوقش پنج وجب طولش. می گفت این قالیه کهنه کم کم سی هزار دلار می‌ارزه اما با افتخار می گفت اینو از یه دهاتی هندی یه دلار خریده تازه اون دهاتی بدبخت هندی وقتی سکهای روپیه رو که میشده معادل یه دلار آمریکا توی دستش گرفته بوده از تعجب دهنش وازمونده مونده بوده و از خوشحالی کلی دعا کرده بوده ازش پرسیدم این قالیه کهنه چرا اینقدر گرونه گفت چون که هر سانتی متر مربعش 80 تا گره داره این قالیچه شاهکار هنریه با شوق و زق زیاد درباره فرش و غالی اطلاعات میداد میگفت توی دنیا فقط یه فرش هست که توی هر سانتیمتر مربهاش 100 گره داره اونم نمیدونم تو کدوم موزه به دیوار آویزونش کردن یه نمد نشونم داد و گفت اینو پنجاه سنت خریدم از خوشی نمیدونی چطور موزیانه می خندید. گفت این نمد هم دستکم پنج هزار دلار میعرضه گفتم این چیزای قیمتی و چطور میتونین اینقدر ارزون بخرین گفت چهل سال کارم اینه. ما هم واسه خودمون روشهایی داریم. بعد چونان روشهایی تعریف کرد که از تعجب دهنم واز موند. گفت ستا کتاب درباره فرش و فرش بافی با یه آلبام فرش منتشر کرده. یکی از با ترین کلکسیون های فرش توی دنیا هم مال اون بوده. سیاحت آناتولی رو شروع کردیم. شهرستان به شهرستان بخش به بخش میگشتیم. هر جا فرشی قالیی به نظرش با ارزش می اومد اکثر رنگی ازش میگرفت و مدام یادداشت برمیداشت. از چند نفر هم فرش و غای و گلیم و نمد کهنه خرید. می گفت این که اینجا میخره؟ پیش چیزهایی که از هندوستان، افغانستان چین ترکمنستان و ایران خریده هیچ ارزشی نداره. گفت ترکیه هم فرش های خیلی با ارزش داره اما بهشون بر نمی خوریم. رفتیم به منطقهی که توش داشتن حفاری باستانشناسی میکردند یه هیئت آمریکایی و یه حیعت آلمانی با 10. 15 کیلومتر فاصله چادر زده بودند و حفاری میکردند زمین و زیر و رو کرده بودند کوه‌ها و تپه ها رو مثل پنبه هلاجی زده بودند تپه ها کوچیک شده بود خاک و انگار الک کرده بودند جایی که حفاری می‌کردند تقریبا اندازه یه شهر کوچیک. بود میگفتن اینجاها چند تا تمدن از ده هزار سال پیش از میلاد تا حالا زیر خاک روی هم قرار گرفته از زیر خاک به جای یه شهر چند تا شهر بیرون آورده بودن کاخ و گورستان و از اینجور چیزا چون جای جالبی بود توریست هم سرازیر شده بودن اونجا هر دو سه کیلومتر که میرفی ده پو تا توریست میدیدی از دهات اطراف محل هفاری هم دهاتیها ها خودشون رسونده بودن اونجا و چیزای که پیدا میکردن چه میدونم اسهی کوزه ای قاشقی چقوی قدیمی و تاریخی که از زیر زمین در می آوردن به توریست ها می فروختن. توریست ها این چیزا رو از دست همدیگه می قاپیدند حتی بچهای داتی هم کنار جاده ردیف شده بودند و سنگ های نوشته دار و سفال های شکسته ای که از زیر خاک در آورده بودند به توریست ها می فروختن. دختر پسرای کوچولو و پا به رهنه داد می زدند وان دلار تو دلار و طرف توریستها می دویدن. با خودم گفتم حالا که تا اینجا اومدم خوبه منم یه چیز یادگاری بخرم. بس یه دختر زاغو و بور که به زحمت ده سالش میشد یه دستگیری گلدون بود و پسری هم که باش بود یه سنگ آبی کوچولو داشت که شبیه سر آدم بود. با خودم گفتم این سنگ آبی ممکنه نگین انگشتری باشه. بهشون گفتم بچه های خوب اینا رو چن می‌فروشین؟ دختره برای دستگیری گلدون چهل لیره خواست. پسرم برای سنگ آبی 15 لیره چونه زدم و گفتم نه اینقدر نمی ارزن ارزون تر بدین تا بخرم هر دوشون مثل آدم بزرگ و شروع کردن به تعریف کردن گفتن اصلا هم گرون نیست پدرمون چند روز زمین و کند و پنج متر زیر خاک اینا رو پیدا کرده میخواستم بخرم اما دوست آمریکایی متخصص فرشم گفت که اینها نه ارزش تاریخی دارن نه ارزش باستانشناسی بعدش گفت توی کشورهای شرقی هر جا که رفته وضعیت همین بوده. اونجا هم عین همینجاست توی مناطق هفاری که گذر توریستا بهش میافته ها چه زن چه مرد چه بزرگ چه کوچیک جلوی توریستا رو میگیرن و هرچی به دستشون برسه جای اشیای عتیق غالب میکنن میگفت این دهاتیای موزی همچی جنس زیرخاکی درست میکنن که حتی باستانشناسای معروف گول میخورن و این چیزها رو جای آثار عتیق و باستانی میخرن و سرشون کلاه میره حتی جسد یه سگ گلر رو معاشش تراشیده بودن و جای مومیای پادشاه به یه توریست آمریکایی فروخته بودن وقتی این کلاهبرداری ها رو تعریف میکرد کرد قهقه میزد و موزیانه میخندید میگفت اما این اشیای تقلبی که داعاتی متقلب درست میکنن دور انداختنی هم نیست. برعکس خیلی هم هنرمندانه و استادانه است مثلا همین سنگ کچوب آبی که چند دقیقه پیش دست این پسره دهاتی دیدی مگه آسونه همچین چیزی درست کرده؟ ع سر آدمیزاد میمونه با جیپی که کرایه کرده بودیم همینطور میرفتیم هوا هم خیلی گرم بود. کنار جاده چند تا درخت تبریزی دیدیم و یه حلقه چاه. گفتیم بریم توی سایه غذامون بخوریم. یه پیرمرد داعای توی سایه درخت های تبریزی چرت میزد کمی اون طرفتر هم یه الاق نشسته بود روی زمین با پیرمرد عاتی سرما احوال پرسی کردیم و سر صحبت باز شد فای پیره مرد و واسه آمریکایی به انگلیسی ترجمه می تو دهات این اطراف بیشتر چی می کارن؟ هیچ. قدیم خب کشت و زر بود. قلات می گندم گندم و مجو. اما از وقتی این هفاری شروع شده 20 سالی میشه دهاتی جماعت خیلی تنبل شده. دیگه هیچ چی نمی کارن. گفت درست مثل جاهای دیگه از پیرمرد مرد پرسیدم خب اون وقت دهاتی ها اموراتشون رو چطور میگذرونن؟ از وقتی موت شده از زیر خاک کاسکوز شکسته در بیارن دهاتیا دیگه کار نمیکنن. هر کی کلنگ برداشته و زمین رو میکنه هرچی هم پیدا میکنن و اجنبیهایی هایی میفروشن که این دورو برا میگردن امریکایی گفت درست مثل جاهای دیگه پیرمرد دهاتی گفت آدم اینجا خیلی خار و زلیلن تمام گنج های مملکت و مفت فروختن به اجنبی از زیر خاک چنان ستون هایی چنان مزارهایی بیرون اومد که میگفتن اگه ارزششون رو میدونستیم و به قیمت میفروختیمشون ده تا ترکیه مثل اینو می‌تونستیم میتونستیم از سر بسازیم اجنبی ها میدونی چجوری هن؟ همشون دزدن هرچی عتیقه از زیر زمین در می اومد می و میبردن با چیزایی که از اینجا بردن توی مملکت خودشون شهرهای بزرگ بزرگ ساختن. بعضی ها خودشون کندن و در آوردن. بعضی ها هم چیزایی که دهاتی در آورده بودن از چنگشون در آوردن. یعنی دهاتیا رو گول زدن و همه چی و مفت خریدن و بردن. امریکایی گفت درست مثل جاهای دیگه. پیرمرد دهاتی گفت دیگه زیر خاک چیزی واسه درآوردن نمونده اگه گفتن چیزی مونده باور نکن راستش دولت دست گذاشته رو غزیه و از این به بعد دهاتی‌ها نمیتونن خودشون حفاری کنن اگه اجنبی‌ها بازم دزدی میکنن از دولت میدزدن شایدم خود دولت داره به قیمت میفروشه آمریکایی گفت بله درست مثل جاهای دیگه پرسیدم خب پس دهاتی ها درامدشون از چه راهی در میاد مرد دهاتی گفت این طرف شش پارچه آبادی است. برو تو خونه هاشون حتی یه تیکه جلو جروفلاس هم نمیتونی پیدا کنی نکوزه مونده نکاسه خونه همهشون خالیه خالیه چرا؟ خب معلومه دیگه به این توریست ها میفروشن. تو خونه چی نمونده، همه چیزو تبدیل میکنن به عتیقه، بعدش میفروشن، زیر خاک چال میکنن، میذارن یه ذره بپوسه، زنگ بزنه، شبیه جنس زیرخاکی و عتیقه بشه. اخلاق این جماعت دهاتی کلا خراب شده. دیروز دیدم یه پسر قد چماغ تو یه چشم هم زدن منجوهای گردن خرم باز کرد و در رفت. مونجوها رو میدزده، بعد زیر خاک چالش میکنه، تبدیلش میکنه به جنس عتیقه و قالب میکنه به توریستهای اشنابی. دخترای بخت همهشون شدن یه پا عتیقه ساز. یه سنگ کوچیک که به دستشون میفته، میبرن و میسابن و یه اثر و هنری درست میکنن. با نعل خر، مدال و سکه غدیهی میسازن. آمریکا یه گفت، بهتون گفته بودم که درست مثل جاهای دیگه. به مرد دهاتی گفتم تو جوری امورات تو میگذرونی؟ پول از کجا در میاری؟ یعنی کارت چیه؟ گفت من خر میخرم و میفروشم موقعی که داشت این حرفو میزد از چاه آب کشید و سطل آب و جلوی خرش کذاشت همونطور که خر مشغول آب خوردم بود یه دفعه امریکایی از جا پرید و رفت میشه خره من رو دهاتی داشتیم صحبت میکردیم خرید و فروش خر درآمدش خوبه خدا رو شکر پنج سال امورات هم با این کار میگذرونم. خدا رو شکر چه چقدره مثلا؟ معلوم نمیکنه مونده به خرش. چقدر طول میکشه که یه خراب بفروشین معلوم نمیکنه یه موقع می خر سه ما پنج ماه فروش نمیره میمونه رو دستت یه موقع می بینه توی یه روز پنج تا خر یه دفعه فروش رفته امریکایی اومد پیشم خیلی حیجان زده بود گفت، آی وای، روی خره یه تیکه قالی هستیدیش؟ چون انگلیسی حرف میزد پیرمرد مرد داداتی نمیفهمید چی میگه. پشت خره یه تیکه جل کهنو و گلی بود. گفتم، این پارچه کثیف رو میگی؟ گفت، نه، خدایا این یه چیز فوق العاده هستی یه شاهکار هنریه. وقتی شما مشغول صحبت بودین من اینو بررسی کردم، هم طرحش عالیه هم رنگهاش، چه کاری روش انجام شده توی هر سانتیمتر مربعای صد و تا گره هست همیشه چیزی تا حالا تو دنیا دیده نشده بی نزیره گفتم میخایین بخرینش گفت بله اما دهاطیه نفهمه که میخوام قالیا بخرم من اینا رو خوب میشناسم اگه یه چارق پوره و کهنه داشته باشن که میخوان بندازنش دور اون وقتی که پیدا بشه و بخواد بخردش با خودشون میگن لابات چیز قیمتی و باارزشیه لابات عتیقه است اون وقت پول خون باباشون از آدم میخوان هر چقدر پول بهشون بدی چشمشون سیر نمیشه هی قیمتا بالا میبرن برای همین به پادهاتی متوجه نشه که چشممون دنبال دانبال و گالیه همون موقع پیر مرد دهاتی ده گفت ای hey, یارو خارجی چیچی بلگور میکنه چرا فنفینگ میکنین گفتم هیچی میگه اینجاها چقدر قشنگه خیلی خوشش اومده کجاش قشنگه چند تا تپی بیا با علف مگه خوش اومدن داره؟ امریکایی گفت به شما گفته بودم چند تا روش برای ارزون خریدن دارم. نگاه کنین. الان یکی از روش ها رو استفاده میکنم. چطوری؟ نمیگیم قالیو میخوایم؟ خره را میخریم. چون این دهاتی قیمت قیمتا قالیو نمیدونه. وقتی خره را بخریم قالیو هم میذار پشت خره بهمونه. بعد ما قالیو برمیداریم و خره را یک کم جلوتر ول میکنیم بره الان شما به دهاتیه بگین که میخوام خرشو شو بخرم به پیرمرد دهاتی گفتم تو خر میفروشی مگه نه گفت آره خر میفروشم مثلا این خره رو چند میفروشی؟ مونده به مشتریش اگه ما مشتری باشیم خندید و گفت در این سر به سرم میذاری آقایونی یونی مثل شما خر میخوان چیکار؟؟ کار؟ تا کارید نباشه. ما میخوایم بخریم. چند میفروشی؟ گفتم که مونده به مشتریش. تو میخوای بخریش؟ یا این یارو خارجیه؟ اون میخواد بخردش. کچه ای هست یارو؟ امریکایی. همچی خارجی هم نیست از خودمونه. این خره خیلی پیره. بهش بگو به کارش نمیاد به دوست امریکاییم گفتم که پیر مرد چی میگه گفت آه چه خوب پس ارزون میفروشدش به پیر مرد گفتم میگه پیر باشه ای بی نداره میگه رازیم ای باخه به با امریکایی اینو بفروشم بعد میره تو مملکت خودشون میگه تورک ها سرم کلاه گذاشتن حرفاشو برای دوست امریکاییم ترجمه کردم گفت دهاتی های ترکیه خیلی صاف و سادن، خیلی آدم های اگه جای دیگه بود، فوری میفروختنش. حالا که اینقدر خوش قلبه، منم پول خوبی بهش میدم. به پیر مرد دهاتی گفتم، آمریکایی راضیه. گفت، باشه، اما آقا، این خره قبل از اون که پاش به آمریکا برسه توی راه می میره. تازه گر هم هست، همه یه پوستش کچر شده. به تو چه عزیز من، خب میخوادش دیگه عجب بابا این خر سالم نیست که به کارش بخوره این خر گر و پی رو میخواد چی کار آخی؟ واسه چی میپرسی؟ تو پولتا بگیر خب بگو ببینم این خر رو چند میفروشی خیلی و سمجیبه کاف شدم از این آقای آمریکایی بپرس مگه تو مملکتشو خر نیست میپرسه مگه تو مملکت شما خر نیست آمریکایی یه کمی فکر کرد بعد گفت بهش بگید خر هست اما اینجوریش نیست حرفاشو برای پیرمرد دهاتی ترجمه کردم گفت پس خر امریکاییو نمیپسنده و خر ترکیه ای دوست داره خب دیگه چیکار کنیم از ما گفتن خر هرچی ایبای لطناش واسطون شمردم تازه دوست ندارم واسه خاطر یه اولاق دل یه اجنبیو بشکنم حالا که اینجوره میفروشمش چند؟ برای شما ده هزار آب میخوره چی؟ مگه دیوونه شدی تو؟ اصیل ترین اسب عربی از نژاد خالص دو سه هزار لیره است اگه اینجوره پس خر رو میخواد چیکار کار خب به اسب عربی بخره به دوست آمریکاییم گفتم ده هزار لیره میخواد گفت مگه گفته بودم اگه خودتا خریدار نشون بدی اینها اینجوری دیگه با خودشون میگن لاباد چیز با ارزشی و قیمت رو بالا میبرن اما من واسه این خر ده هزار لیره حاضرم بدم اما هم این که بگم باشه به همون قیمت که گفتیم میخرم اون وقت پنجاه هزار لیره میخواد برای همین باید حسابی چونه بزنیم به پیرمرد داعاتی گفتم راستشو بگو این خرو چند خریدی گفت دروغ تو کار من نیست ببین الان وضو دارم دروغ بهت نمیگم من این خره رو برای اینکه با پوستش چهارغ به خریدم پنج لیره همین امروز و فرداست که سقت بشه اون وقت پوستشو میکنم و باهاش چارغ درست میکنم به درد دیگهای هم نمیخوره بابا انصاف داشته باش چطور خری که پنج لیره خریدی میخوای ده هزار لیره بفروشی من که من که نمیخواستم بفروشمش شما گفتین به بخرین و مشتریش شدین گفتم پیره یارو گفت باشه گفتم گره یارو گفت ایبی نداره گفتم به دردت نمیخوره باز میخوادش گفتم تو راه میمیره بازم میگه خوبه تازه داشتی آدم یادم میرفت این خره چلاقم هست پای <تصفيق> عقبش میلنگه باشه دیدی پس لابد این خره ارزشی داره که من حالیم نشده وگرنه چرا باید این یارو آمریکایی بخواد یه خره پیر و گر و به درد نخور و لنگ رو بخره بد میگم ده هزار تا کمتر صرف نمیکنه نمیفروشم به یه گفتم پایین تر نمیاد. بدیم بهش در ازا رو. دو ساعت شونه زدیم. یه بار طوری وانمود کردیم که از خیلی معامله گذشتیم و راه افتادیم که مثلا بریم. اون اصلا اهمیتی نداد. برگشتیم اومدیم پیشش. گفت میدونستم برمی کردیم. گفتم از کجا میدونستی؟ گفت معلومه دیگه. یه خری زیر قیمت گیر آوردین مگه همینجوری براننده جیپ گفتم جیپو و برداره ببر جلوتر کنار جاده منتظر ما بمونه میخواستیم بعد از اینکه خره رو خریدیم همونجا ولش کنیم و سوار جیپ بشیم خلاصش هش کنم بعد از کلی چک و چونه زدن سر دو هزار پونصد لیره به توافق رسیدیم پولها رو شمردیم و دادیم دستش پیرمرد دهاتی هم قالی پشت خر و برداشت و افسار خر رو داد دست ما گفت مبارکتون باشه بعد ادامه داد درسته خره پیر و گر ما ارزون از دستمون رفت اما عیبی نداره خیرشو رو ببینین چشمای دوست آمریکاییم چهار تا شده بود به تیکه قالی توی دست پیرمرد دهاتی نگاه می کرد با خودم گفتم الان چی میشه؟ گفت مبادا به روت بیاری بیا افسر خره رو بگیریم یه خورده بریم بعد طوری که انگار برامون مهم نیست برگردیم و به پیرمرده بگیم کمر خره ممکنه سرما بخوره این جل پاره رو بده بندازیم روی کمرش اما مواظب باش نفهمه که چشممون به اون قالی هست. است. خر و گرفتیم و راه افتادیم. این میگم راه افتادیم به خاطر اینه که کلمه‌ی دیگه‌ای پیدا نکردم. راستش آمریکایی از پشت هول میداد، منم از جلو میکشیدم اما خره انگار نه انگار از جاش جنب نمیخورد. اونقدر پیر بود که نای راه رفتن نداشت. اگه میتونستیم اون تیکه قالی و از دست پیرمرد دراریم، خره رو ول میکردیم و میرفتیم. به زور و زرب و هل و کش و گوس بیسی قدم جلو رفته بودیم که یهو یه پیرمرد دهاتی از پشت سرمون داد زد وایسین وایسین یه چیز خره مونده دوست آمریکاییم از خوشحالی کم مونده بود بال لر بیاره گفت مثل اینکه که خودش داره قالیو میاره پیرمرد دهاتی دوان دوان اومد و گفت بابا شما ها چقدر حواستون پرده میختویله رو یادتون رفت ببرین وقتی بردینش امریکا اون وقت افزارشو کجا میخواین ببندین اصلا به فکر نیستین که مگه خر و میختویله میخرن پیداست خیلی ناشی هستین میختویله آهنیو که سرش یه حلقه هم داشت از دستش گرفتیم امریکایی به من گفت الله انا وقتشه اون قالیو هم بخواه بگو اونو هم بده اما نذار به بگو این جالب پاره‌ای کشیفو هم بده. به پیرمرد دهاتی گفتم این خره خیلی لاغر و مریضه، حیونی سردش میشه. تو یه جله و پاره انداخته بودی روش، همونو بده بندازیم روی کمرش سردش نشه. گفت: نه، جلو نمیتونم بدم. شما از من خره رو خریدین، جلو که نخریدین. بله، خره رو خریدیم، جلو رو هم بده بندازیم روش. جله اونقدر کوهنه است که به هیچ درد دیگه ای نمیخوره درسته کوهنه از کسیفه به هیچ دردی هم نمیخوره اما نمیتونم به شما بدمش چرا؟ نمیتونم بدمش آقا این جل یادگار پدرمه به پدرم هم از پدرش رسیده بوده خلاصه یادگار پدرانه مونه به دوست آمریکاییم گفتم نمیده میگه یادگار پدرمه گفت ازش بپرس ببینیم این یادگار پدری به چه دردش می‌خوره. از پیررد پرسیدم این تیکه جل کهنه و کثیف مگه به چه کاری میاد حالا پیرمرد دهاتی یک دفعه جدی شد یعنی چی به چه کاری میاد؟ الان یه خر دیگه پیدا میکنم و میندازمش روش اگه قسمت باشه خریداری مثل شماها پیدا میشه و اگه خدا بخواد اونو هم میفروشمش این جل واسه من خوش میاره خوششانسی؟ تازه من میختویلا رو هم مجانی بهتون دادم مگه واسه اون چیزی گفتم حالا تو سخت نگیر بیا چند قروش هم واسه این پارچه کهنه بدیم و بندازیمش رو کمر خره حیبونکی سرما میخوره ها این جرفیه میزنی اون وقت من خرار رو چجوری بفروشم پنج سال خرای پیر و گر و لنگ و به حساب این جن پارست که میفروشم خب دیگه خداحافظ برین خیرشو رو ببینیم ترسیدم آمریکا یه سکته کنه زیر بغرش شو گرفتم پیرمرد مرد چند قدم جلوتر که رفت برگشت و گفت اگه میخواین خره رو ول کنین بی خودی زحمت نکشین و جای دور نبرینش اینجوری منم خسته نمیشم خره رو همونجا ولش کردیم و تا جایی که راننده جیب و پارک کرده بود پیاده رفتیم دوست امریکایی متخصص فرشم گفت جاهای دیگه اینطور نبود همچین برای سرم نیومده بود همشون مثل همن، اما این یه جور کلک دیگه بود. سوار جیب شدیم. میختویله هنوز توی دستش بود. از دستش نمیداخت. گفتم، این میختویله رو میخوای چیکارش کارش کنی؟ گفت، میذارمش توی کلکسیون فرشام و سیادگاری. میختویله یک قیمتیه؟ مافت خریدیمش. دو هزار لیره. پزشحالم و آدم آبرومون رفت دیگه آبرو واسمون نمود همینطور توی سرش میزد و میگفت آبرومون رفت